مخشه 28 و شب عیدی چه وزی برای خودم به هم زده بودم لباس قرمزم از آستین تا زیر بغل جر خورده بود باید دو سه هزار تومان خرجش می کردم تا نسبتا رو به راه شود ولی باز آفتاب خرج لحیم بود شلوارم را که دیگر نگو پارو گلی توی کمتر از یک هفته جفت شلوارهام را شوهر دادم رفت دست و پام تمام زخم و زیلی شده بود ولی شکر خدا چهار ستون بدنم سالم بود از روی زمین که بلند شدم لاله را دیدم که ده متر آن طرفتر از موتور دراز به دراز خوابیده است خودم هم که دو متر این طرفتر از موتور بودم با این حساب فاصله من و لاله سر به دوازده متر میزد چند نفر دارو بر من واایستاده بودند که وقتی سرپا شدم رفتند اما حدود هزار و دیویس نفر آدم بالای کله لاله جمع شده بودند و یک بند نفوس بد میزدند از دماغش داره خون میاد. کارش تمومه. ببین نفس میکشه؟ نفس نمیکشه که. از دماغ این داره خون میاد بابا نفس نداره یکی یه کاری بکنه. این ضربه مغزی شده. این ضربه مغزی شده. میتوانستن احتمال بدهن قضیه یک خون دماغ ساده است که با استراحت خوب میشود ولی دوست داشتن بی خودی گندهش کنند. دو سه نفر هم که سوزنشان گیر کرده بود آمبولانس آمبولانس. قیامتی شده بود لنگ جمعیت را کنار زدم و کلم را از بین مردم تو کردم واه. آنجا چیزی دیدم که تو همین الان نتوانستم کمر راست کنم هیچ وقت خدا آن صحنه از یادم نمی روید. لاله کف چسبیده بود و دستهایش را انگار که با زبان بیزبانی زبانی کسی را بغل کند از دو طرف باز کرده بود جای آباد به تنش نداشت تا ک خونی بود ولی چیزی که برایم بیاندازه جالب توجه آمد این بود که از گل و گوشش هم داشت خون بیرون میریخت. شرشره باران هم که تا پاش را مثل آب کشیده کرده بود. باران همیشه صحنه این چنینی را کم گیزتر فضا جان میداد برای اینکه دور خیز کنم دوان دوان خودم را روی لاله پرت کنم و زار زار روی جسدش جز جذا به راه بیاندازم. حتی می‌شد دستهایم را بی به خونه دماغش بزنم و رو به آسمان بگیرم و فریاد بزنم خدا اما دلش را نداشتم راننده اتوبوس پیاده شده بود و معلوم نبود داشت صحنه تصادف رو برای کی توضیح میداد میگفت آقا من مقصر نبودم مادر چراغ من سبز بود داشتم میرفتم که موتوریه یهو ناغافل پیچید جلو شاهدم دارم همه ای ملت هم دیدن مسافرهای اتوبوسم دیدن میان شهادت میدن بعد به خودش رو یک مست سویل پشت لبش سبز شده بود ولی رنگ به رخ نداشت. یعنی قیافه لاله به آن روز درش آورده بود. هر کس دیگری هم که لاله را می دید پشما پیلش فر می جدا از دست رفته به نظر می آمد. وسط این علم شنگه یکی داد زد. راننده موتور کجاست؟ موتور یکو؟ یکی گفت. الان اینجا بود. افتاده بود اینجا بغل موتورش. داشتن راجب به من حرف می زدند. بهترین فرصت بود که خودی نشان بدهم. خواستم جلو بروم و مثل یک مرد مسئولیت حادثه را گردم بگیرم که ناگهان وضعیت لاله منصرفم کرد. الان یک تکانکی هم نمیخورد که دلم خوش باشد. الان اینجا بود. ببین زیر اتوبوس نرفته؟ نه بابا میگم الان اینجا بود. من بالا سرش بودم. فرار کرده حتما آره اومده کیف دختره را به قاپه. خودشم خورده زمین فرار کرده. حالا بیا درستش کن، یکی میشنوند دوتا روش میگذارند، باز جامعه داشت جلوی چشم خودم در مورد من اشتباه میکرد، یکی گفت، من دیدمش از اینوری فرار کرد، بعدم با انگشت طرف میدان منیریه را داد مردی که خالی بند، آرام آرام داشتم ملتفت میشدم که چه روزی دارد به روزگارم میاید، قشنگ خانه خمیر شده بودم، لاله به هر قیمتی که شده باید نفس میکشید، وگرنه که هیچ توی آن شلوغی کسی حواسش به من نبود ولی هیچ تزمنی وجود نداشت که تا آخرش هم همینجور بماند. نرم نرمک دو سه قدم به عقب برداشتم. قصد بدی در کار نبود ولی احساسی که داشتم این بود که نیروهای شیطانی عظیمی میخواهند در مدت زمان کوتاهی من را از محلک فراری بدهند. کمی با خودم جنگیدم، حتی دو مرتبه دو سه قدم به جلو برداشتم که تلافی کرده باشم اما آخرش نشد که نشد. قلب به نیروی عظیم شیطانی کار هر کس و ناکسی نیست. پس پسکی از لای جمعیت بیرون آمدم و حالا ندوکی بود و بدم نمیام سر راه موتور رو هم بردارم ولی آنی که من می دیدم روشن بشو نبود یعنی کلا موتور بهشون نبود. سمتش میرفتم رفتم بی خودی گیر توده مردم میافتادم. برای رد گم کنی تو یک کوچه شش متری که سر راه هم بود پیچیدم و پشت یک پیکان پناه گرفتم. از همانجا کوچه را سوکیدم که یک وقت کسی از رد خونهایی که روی زمین ریخته تعقیبم نکرده باشد اما ناگهان متوجه شدم که به صورت اسرارآمیزی حتی یک قطره خون هم ازم چکد جدا یک قطره هم روی زمین نریخته بود. حالا از یک طرف جانم دارد بالا میآید از یک طرف دیوانگی هم گول کرده و داره مسخره بازی درمی‌آورم. یک بطری نوشابه خالی از زمین برداشتم و درش را با دندان باز کردم. بعد مثل اینکه نارنجکی کوکتل مولوتوفی چیزی باشد با تمام قدرت سوتش کردم وسط کوچه و دوباره سرم را دستیدم کمی صبر کردم بعدش انگشتم را دو شاخ کردم و چند تا تیر هوایی در کردم که دشمن فرزی به سرعت از منطقه دور شود شک دارم که با دهن صدای شلیک را درآورده باشم ولی صد در صد که تیر هوایی را در کردم میبینید که توی بدترین شرایط هم آدم بشون نیستم کمی آنجا نشستم تو نفسم چاخ شد دوباره راه افتادم. حال خودم را نمیفهمیدم. به شدت به یک تصمیم عاقلانه احتیاج داشتم. نه از آن تصمیم‌ها که زندگی آدم را برای همیشه کم کم می کند. در واقع منظورم تصمیم‌هایی است که به درد حل و فصل مسائل اورژانسی می‌خورد. تنها چیزی هم که به عقل ناقصم رسید این بود که هر جور شده اسکندر را ببینم. هر بالا پایین کردم دیدم باید اسکندر را ببینم. تصمیم خوبی نبود، قبول دارم. ولی شما خودتان کلاهتان را قازی کنید. خیالتان در این شرویه چه کار دیگری از دست آدم برمیآید؟ بهترین کاری که یک آدم می میتواند بکند این است که هرچه زودتر رقیب عشقی‌اش را ملاقات کند. اینقدر کوچه پس کوچه کردم که از جلوی سقاخانه‌ی خانه محلی اسکندر اینها در آمدم. ای که قربان خدا بروم، همیشه من را با این کارها شرمنده خودش می کند. نمی نمیدانید از نظر روحی چقدر به خانه امامزاده ای چیزی احتیاج داشتم. دست دست نکردم. دوست حاضر باز حاضر. دوان دوان خودم را به میله ها رساندم و مثل انتر ازش آویزان شدم. اش میریختم چه اشکی نز کردم که اگر لاله به زنده بماند روزی هزار تا شم درسته اینجا روشن کنم. مبلغ ناچیزی هم نظره ممزده معصوم کردم که کار را چهار میخه کرده باشم. از نظر اخلاقی هم قولهای خوبی به سقا خانه دادم که به نظرم حالا دیگر گفتنش به شما ضرورتی ندارد. از تحه دل پیش خدا دعا کردم که اگر خوش ندارد هرچه زودتر سلامتی کامل به لاله انایت کند. حد از کمر به پایین فلجش کند که من در آینده نزدیک زیاد شرمنده خانوادش نشوم. چشمام سرخ شده بود. چهار بندم داشت می درزید. تا می به خودم امید واحی بدهم یاد پک و پوز روی آسفالت می و بلکل نامید می شدم. اگر لاله بمیرد ها که بر سرم ها به ابلفضل همین بازاریاب‌های زپرتو کاسه داختر از آش می‌شدند و سبیله نداشتهم را دود میدادند وای خدا این چه پوست خربزهای بود که زیر پای من ول دادی دوتا دختر چادری که برای شم روشن کردن آمده بودند میخمن شده بودند که چهجوری نردهها را محکم گرفته بودم و مثل مار به خودم میپیچیدم اگر چهار تا آدم ناشی این کارها رو بکنید حتماای خیال میکنند دارید یک جور مراسم مذهبی به جا میآورید اما این دوتا خودشان ختم این کارها بودند از بس که حالم بد بود گریهام نمی آمد و همین مسئلهام هم حالم را مدام خرابتر میکرد اما آخرش که چه نمیشد که تا آخر شب نرده ها را بغل کنم و اشک تمساح بریزم مردم که الاف آدم نیستند وانگهی از خانم تا یک حد نمی شود انتظار داشت این تو بهمیری از آن تو ها نبود با دوتا شم روشن کردن خشک و خالی که مردهٔ آدم زنده نمیشود دست آن تا دختر چادری را توی دست سقاخانه گذاشتم و خودم گورم را گم کردم پاهام دیگر به فرمانم نبود شانم به دیوار میسابید و کفشهایم را روی زمین لخ لخ میکشیدم کمی از فیلم در آورده بودم ولی خدا وکیلی نزیاد بازی, بازی وارد یک مثلث عشقی پیچیده شده بودم که هنوز هیچی نشده یک مورد طرفات جانی روی دستم گذاشته بود سر وچه صادق راستگو کوچه اسکندر که رسیدم قدم هایم کند شد من کندتر نکردم خودش کند شد با اینکه جیکم در نمیامد، ولی این احساس مسخره بهم دست داد که صدام دارد میلرزد بغز گوشهایم را کیپ کرده بود به یک قدمی خانهشان که رسیدم پرک چپم شروع کرد به زدن چل شده بودم داشتم عجب فشاری را تحمل میکردم پسر جلوی در چند تا موتور پارک بود معلوم بود جلسه دارند حالا یا هفتگی یا لیدرشی، یا هرچی چون اون همه موتور که برای سر قبر پدر اسکندر که جمع نشده بود حتما جلسه ی چیزی داشتند ساعت حدود چهار و خورده ای بود و معلوم هم نبود که جلسه اشان کی بخواهد تمام شود دستم را روی زنگ گذاشتم و زدم توی کمتر از ده ثانیه تا زنگ زدم ولی صد تا زنگ زدم چرا نزنم؟ مگر کم بدبختی جفت و تاخ سرم ریخته بود که حالا بخواهم به فکر این چلغوز ها باشم کلم بالا بود و هی زنگ پشت زنگ با هم ریز گرفته بودم به درد تا اینکه خود اسکندر کلش را از پنجره بیرون کرد. ریخت و روزم آشهده تر از چیزی بود که بخواهد از آن بالا فواشم بدهد. سرش را دزدید و به سه شماره آمد دمه در. چشمش که بهم افتاد واماند به خواب هم نمیدید که روزی رقیب قسم خوردهش را این به خاک افتاده ببیند. هوس کردم توی بغلش به و های های برایش گریه کنم. اما باز در آخرین لحظه منصرف شدم. تا امروز صد هزار بار سر چیزهای مختلف در آخرین لحظه منصرف شدم. این هم یکیش گفت چیه چی شده تو صورتش بور شدم اچی بود حالا که بیشتر دقت می کردن موهای اسکندر تلایی نبودی جور زرد انمرقی بود موضوعی که تا آن روز بهش پی نبرده بودم از هرسم مشت چپم را گره کردم این کار را معمولا برای این می کنم که غم کمتر شود ولی آنجا حساب کار فرق می کرد. بعد مستقیم دماغش را نشانه رفتم جوری هم محکم زدم که بفهمد گربه کجا توخ می کند. جا به جا روی زمین نشست و صورتش را لایه دوتا دستش گذاشت خون از لایه انگشتش چکه میکرد ولی هنوز فخشی چیزی به هم نمیداد. گفتم، خیالت راحت شد، کاشتمش، مرد، همینو میخواستی بی غیرت؟ اگر دماغش سالم بود، حتما ازم میپرسید دارم راجب چی حرف میزنم، ولی دماغش سالم نبود. گفتم، همینو میخواستی نه؟ بی شرف، دست ناموس، سرش را بالا گرفت و هاج و واج ور کرد. ما بارده بود. یک لگده قایم به کپلش کبیدم بلکه به خودش بیاید. آمد. گفت. چیکار میکنی حیوان؟ چی میگی تو؟ بغزم از نو ترکید. بیا. اینم آخر آقابت کسابتگاریات. بیچاره شدیم. کشتمش. تازه تازه داشت خرفه فهم میشد. از جابالن شد و دستش هنوز روی دماغش بود. کیو کشتی؟ درست حرف بزن ببینم چی شده. از بس بلند حرف میزه صداش جیخ شده بود. گفتم دیگه چطور میخواستی بشه؟ کشتم. لاله رو کشتم بفرما. راحت شدی؟ به به موفقیت نهایی رسیدی؟ عشقال عوضی؟ سرخ شد. موضوع رو میفهمید ولی انگار نمیتوانست باش کنار بیاید. درست مثل خودم. گفت. تو چه غلطی کردی؟ کشتیش؟ چجوری؟ کا بفرما حالا یک چیزی هم بدهکار شدیم داشت زینجی من میکرد جوابشو را ندادم دستش را از روی دماغش برداشتو یک قدم جلو آمد و یکی با مشد تخت هم کوبید با تو هم میگم چه خرطی کردی یاله حرف بزن یقهام را دو دستی گرفت و من را گل دیوار چسباند فریاد زد به حرف بزن ببینم چی شده نه نتی؟ تو چیکار کردی رو چیکار کردی لاله کجاست وقتی قضیه مربوط به یکسان رانندگی بود و می توانستم براش توضیح بیشتری بدم اما ناخداگاه ترجیح دادم یک کفگرگی توی صورتش ول کنم نازشستم به امام حسین دو متر پرتاب شد آنی روی سینش نشستم و تو می خورد زدم بغزم هم که ترکیده بوده و اینجوری راحتتر از پس کار بر آمدم اسکندر از آن زیر برای خودش لنگو لگد کور پرتاب می کرد و فوش مادر میداد. ولی من که گوشم به این نبود تازه شروع کرده بودم. بی هوا دستش را دراز کرد و شستش را توی دهنم فرو کرد و محکم فشار داد. کمانده بود گوشم جرب بخورد. گفتم ولکان ولکانم ولکانم ولکانم اما چون انگشتش تو دهنم بود صدام یک با بامزدهی شده بود. منتظر شدم دستش را که کشید دست هایم را داره گردنش حلقه کردم و دست به کار شدم. از آنجا به بعد دقت کردم که دارد جان کردی می کند. حتی نمی توانست یک پاشه ناقابل بدهد فقط دست پایش را به حالت مسخری روی هوا تلو تلو می داد دکا داشت خرد می شد به خاطر سر و صدایی که راه انداخته بودیم یکی که نمی شناختمش سرش را از پنجره اتاق اسکندر بیرون کرد و تا فهمید اوضاق قمر در اقرب است داد کشید مجید مجید چی شده این کیه؟ باعثا هم با همان سرعت قیوح شد زیاد وقت نداشتم الان بود که یک مشغل چماق از خدا بی خبر سرم نازل شوند همان جور که داشتم خرخرش را فشار میدادم گفتم همش تقصیر تو هاروم زاده تو مگه خودت خاور مادر نداشتی اونا چی چی بود واسهش نوشته بودی منظورم بانوی زیبایی ها نبود بیشتر منظورم همان پیامک هایی بود که بهتان گفتم اگر شاه را هم بزنید حرفی ازش نمیزنم گفتم ها میگم اونا چی بود به شرف اول اول که داشتم فشار میدادم رنگ پوستش صورتی بود اما رفته رفته مایل به بنفش شد بنفش پررنگ کار تازه, تازه داشت به جاهای باریک میکشید که طبق پیش بینی خودم یک مرتبه ده تا نفر از توی خانه ریختن سرما با چک و لگد افتادن به جانم با اینکه هنوز مطمئن نبودن حق با کیست ولی من رو گرفتن به باد کتک متاسفانه نتوانستم هویت هیچ کدومشان را شناسایی کنم ولی صد درصد بهتون میگویم که از دست پرورده های خود اسکندر بودند هر چه زدن از روش بولندم کنن بهشان راه نمیدادم. خوب جوری روش نشسته بودم. اسکندر دیگر دست و پایش را با همان قدرت اول تکان نمی‌داد. مانده بود که کارش را برای همیشه یکسره کنم که خدا چقدر رحم کرد یک دفعه یک چیز مثل پودک از پشت گروم میخورد توی سرم. در واقع این آخرین چیز جالب توجهی است که از آن روز به خاطرم مانده است.